میشه شوهر اثر فودور دستگنسکی ترجمه علیاسستر خپ با صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری موسسه انتشارات نگاه تابستان فرارسی و ولچانی در برابر همه امیدواری ها در پترزبورگ ماند وسایل مسافرتش به جنوب روسیه فراهم نمیشد و او پایان کارهای خیش را نامعلوم می دید. این کارها که دعوایی در مورد دارایش بود داشت جریان بدی به خود می گرفت سه ماه قبل همه یک کارها هنوز ساده به نظر می آمد و نتیجه اشان غیر قابل انکار بود اما ناگهان همه چیز تغییر کرد و اکنون ولچانینوف با شادی بیهوده اغلب این جمله را تکرار می کرد و به طور کلی همه چیز به جریان بدی افتاده او وکیلی داشت ماهر، مهم و مشهور و در پول خرج کردن هم دریغ نمی کرد. اما به علت بی حسلگی و بدبینی کم کم عادت کرده بود که خودش جریان کار را به دست بگیرد. کاغذهای زیادی را که وکیلش یک جارد میکرد می, کرد, می خاند و مینوشت و به دادگاهها مراجعه می کرد. به اداره آگاهی میرفت و شاید نیز همهی کارها را در هم و برهم هم میکرد. در هر حال وکیلش از این امر شککتت مینمود و او را به ییلاق رفتن دعوت می کرد. اما او حتی برای رفتن به ییلاغ هم نمی تصمیمی بگیرد. گرد و غبار گرمای خفه کنندی شبهای روشن بسیار زننده چیزهایی بود که او با ماندن در پترزبورگ از آن بهره می برد. منزل مسکونیش نیز که در نزدیکی تئاتر بزرگ واقع شده بود و به تازگی آن را اجاره کرده بود راضیش نمی‌کرد. هیچ چیز. رفت نداشت. مرض مالی خولیایش که مدت زمانی بود به آن دچار شده بود هر روز شدیدتر تر میشد. مردی بود که مدت درازی آزاد زیسته بود. اکنون دیگر زیاد جوان نبود. سی و هشت یا 39 سال داشت و این پیری همانطور که خودش میگفت تقریبا به طور ناگهان فرارسیده بود اما خودش میفهمید که این پیری به واسطه ی گذشت سالها نیست. ولی میتوان گفت که کیفیت این سالها او را پیر کرده بود و علت بدبختی هایش نیست بیشتر درونی بود تا بیرونی. گرچه هنوز هم آدم بیغم و غصه و سربلندی به نظر میآمد. مردی سالم و قوی و خوشی کلب. بیان که یک تار سفید در موهای بور و انبوه سر و ریش درازش که تقریبا تا نیمه سینهش پایین می آمد دیده شود به اولین نگاه اندکی زمخت و کوفته به نظر می آمد. اما وقتی که از نزدیک مورد دقت قرار می گرفت شما فورا درک میکردید کردید مردی است، صاحب اراده که تربیت اجتماعی خوبی را دیده است ولچانینوف، با وجود بدخویی و بدخلاقیش و با وجود بیبندوباری مخصوصی که به آن عادت کرده بود، رفتارش هنوز ساده و جسورانه و در عین حال پر از لطف بود و تا کنون به طولانی ترین و جسورانه ترین خوشگذرانی که شاید حتی خود او هم تعداد آنها را نمیدانست پرداخته بود. هرچند که نه تنها مرد باهوش و زیرکی بود بلکه اغلب بسیار عاقل و بی‌اندازه دانا و دارای قریحه سرشاری بود. قیافش باز بود و صورتش آب و رنگ دلچسبی داشت تا مدتی پیش لطف زنانهای در صورتش مشاهده میشد و جلب توجه زنها را میکرد. و حتی امروز به اولین نگاه میشد از آن کرد که چه تراوت مادرزایی دارد. با وجود اینها این مرد با تراوت به طور ظالمانه ای مورد حمله مرض مالی خودیا قرار گرفته بود ده سال قبل چشمان درشت آبیش حالت تسخیر کننده ای داشتند چشمانش به قدری روشن با حالت و بیقید بودند که بی اراده نظر کسی را که به آنها خیره میشد، به خود جلب می کردند ولی اکنون با فرارسیدن چهل سالگی روشنی و لطف تقریبا از این چشم ها که اکنون با چینهای های کوچکی احاته شده بود رخت بربسته بود از این چشم ها برق بدبینی مرد ای که زیاد پابند اصول اخلاقی نیست مکر و و اقرب اوقات تمسخور و همچنین درخشش مبهمی که سابقا وجود نداشته است درخشندگی مبهمی از اندازه و رنج رنجی نامعلوم یا به عبارت دیگر بی جهت اما عمیق پراکنده میشد. این اندوه مخصوصاً هنگامی که تنها بود ظاهر می گردید. و موضوع عجیب این بود. این مرد که دو سال پیش هنوز به قدری پرسر و صدا، به قدری بشاش، به قدری لوده بود که حکایات خوشمزه را با مهارت تامی نقل میکرد. اکنون هیچ چیز را بیشتر از اینکه کاملا تنها به دوست نمی داشت. با کمال میل، پیوندهای بیشمار اجتماعی خود را گسسته بود. گرچه با وجود وضع بدی که کارهای مالیش داشت، به خوبی می توانست این پیوندها را نگسلد کاملا واضح است که خودخواهیش به این امر کمک کرده بود. به علت این خودخواهی و یک نوع بدگمانی زیاد از حد، برایش غیرممکن بود که آشناییها و دوستیهای قدیم خود را تحمل کند. اما در انزوا خودخواهیش نیز داشت کم کم تغییر شکل می داد. این خودخواهی البته از بین نرفت، اما به شکل مخصوصی که سابقا وجود نداشت در آمد. کسانی که سابقا به التهاه گوناگون فقط دلش را آزرده میساختند. اکنون باعث رنجش خاطرش میشدند حالا دیگر این علتها علتهایی پیشبینی نشده و غیر قابل درک بودند علتهای عالی بودند اگر فقط بتوان اینطور تفسیر کرد و اگر حقیقتا علتهای عالی و علتهای دانی وجود داشته باشد این مطلب را حالا او خودش اظهار میداشت بله او به این موضوع رسیده بود بکنون در برابر این نوع های عالی که سابقا حتی به آنها نرسیده بود آهسته می لرزیدند در فکرش و در وجدانش تمام هایی را عالی مینامید که با وجود تعجب خودش مطلقاً برایش ممکن نبود در اندرون خود به آنها بخندد آنچه که تاکنون هنوز برایش حاصل نشده بود طبیعتا همان خندیدن به این علتها آه که این مطلب در اجتماع چیز دیگری بود اگر اوضا و احوال یاری می کرد او کاملا میدانست که میتواند همین فردا با صدای بلند و با وجود همه تصمیمات نهانی و آسمانی وجدانش به این علتهای عالی پشت پا بزند و اولین کسی باشد که در اندرون خود به آنها بخندند مسلما به اینکه به هیچ چیز اقرار کند و حقیقتا همین طور بود اگرچه او در این روزهای اخیر نوعی استقلال فکری قابل توجه به دست آورده بود و توانسته بود خود را از چنگال علتهای دانی که سابقا بر او تسلط داشتند رهایی بخشند چه بسیار بامدادها هنگام بیرون آمدن از رختخواب، از افکار و احساساتی که در مدت ساعتهای بیخوابیش این اواخر دائما از بیخابی رنج می برد به او حجوم آور شده بود شرم سار می شد. اکنون مدتی بود که میدید دائما نسبت به همه چه در امور مهم و چه در امور عادی بدگمان می شود به همین جهت بود که تصمیم گرفت به کمترین اندازه ممکن به خیشتن اعتماد کند اما غذایه رخ داد که مطلقاً محال بود وجود آنها را منکر شد اغلب هنگام شب افکار و احساساتش تقریباً به طور کلی تغییر شکل می‌داد و بیشتر آنها شباهت خود را نسبت به آنهایی که در ابتدای روز داشت کاملاً از دست می‌داد این موضوع را متعجب می‌ساخت و حتی به پزشک مشهوری که می‌شناخت مراجعه می‌کرد و طبیعتاً از آنچه که به سرش می‌آمد با خوشمزگی حرف زد هنگام مراجعت فهمید که تغییر شکل و حتی تزاید افکار و احساسات در ساعات بیخابی و به طور کلی هنگام شب حادثه است عادی که در میان اشخاصی که فکر می کنند و شدیدن حس می کنند رایج است. فهمید که ایمانهای سراسر یک زندگی در اثر نفوذ نابود کننده بیخابی و شب ناگهان تغییر شکل می دهند. دفعتن بی هیچ دلیل شومترین تصمیم ها اتخاذ می شود. البته همه اینها تا یک نقطه معین صدق می و اگر در آخر کار این شخص به شدت این تزاید احساسات را درک کند تا به جایی که از آن رنج ببرد آن وقت مسلما این آثار بیماری است در این صورت می بایست بدون فوت وقت جلوی آن را گرفت و برای معالجه بهتران است که به طور کلی نوع زندگی و روش آن را تغییر داد یا حتی به سفر رفت همچنین یک مسهل هم ممکن است مؤثر واقع بشود. ولچنینوف پیش از این به این مطالب درونی گوش نمیداد، اما مرض او اکنون برایش مسلم شده بود. با تمسخر فریاد میکشید. بدین طریق همه اینها جز آثار یک مرض چیز دیگری نیست. این علت عالی یک مرض است. هیچ چیز دیگری نیست. این موضوع را با تیب خاطر نمی توانست قبول کند. وانگهی خیلی زود آنچه که در لحظات استثنایی فرا می رسید هنگام صبح تکرار میشد. اما با مرارت بیشتر، با خشم به جای پشیمانی، با تمسخر به جای رقت اینها روی هم رفته حوادثی از زندگی گذشتهاش بود که اغلب حتی بسیار دور افتاده بود که دائما بیش از پیش با طرز بسیار مخصوصی ناگهان و خدا می داند برای چه به خاطرش می آمد. مثلا اکنون مدتی بود ولچانینوف از فقدان حافظه می نالید. صورت اشخاص آشنایی را که هنگام برخورد از آنها متنفر می شد فراموش می کرد می توانست از کتابی که شش ماه پیش خوانده بود خاطره ای نداشته باشد اما برای چه با وجود این فقدان حافظه عادی و آشکار چیزی که او را زیاد مسترب میکرد، آنچه آنچرا که در گذشته دور دستی در ذهنش نقش بسته بود آنچرا که در مدت ده یا پانزده سال کاملا فراموش کرده بود اکنون ناگهان با موش مخصوصی در جزئیات و با دقت و ریزکاری جان میگرفتند. به قسمی که به نظرش می که از نو زنده شدند. ولی بعضی از این حوادث هم به قسمی فراموش شده بودند که امکان به خاطر آوردن آنها اکنون معجزهی به نظر میآمد اما این تمام مطلب نبود. کیست که میان مردم زندگی کرده باشد و بعضی خاطرات را حفظ نکرده باشد. مهم این بود که آنچه دوباره به خاطرش برمیگشت، اکنون حیات دوباره ای می آفد. مثل اینکه دریچهی کاملا غیر مترقبه و تاکنون درک نشده بر روی آن گشوده شده باشد. برای چه بعضی از خاطراتش اکنون به نظرش جنایت میآمد؟ حل این معما در میان قضاوتهای اقلانیش وجود نداشت، به روح تاریک و منظوی و مریض خود اطمینان نداشت. در این موارد به لعنت و نفرینی تقریبا تا با اشک اگر میشدش که درونی و نه ظاهری میرسید دو سال قبل هرگز نمیتوانست باور کند که روزی گریه خواهد کرد وانگهی در ابتدا خاطراتش بیشتر به جای اینکه احساساتی باشد نیشدار و دو بود، جریان بعضی از ها را که منجر به سرشکستگی‌هایی شده بود، دائماً به خاطر می‌آورد. مثلاً افتراهای یک مفسد را به خاطر می‌آورد و در دنبال آن خودش را می‌دید که از داخل شدن به منزلی امتناورزیده است. و همچنین چگونه اندکی قبل در ملأ عام علناً به او بدگویی کرده بودند بی این که او طرف را به دوئل بخاند. و چگونه بی این که به جوابی بدهد او را در برابر زنهای زیبا با کلماتی بی انداز نیشدار خاموش گردانیده بودند و حتی دو یا سه قرض پرداخت نشده خود را که در حقیقت بی مورد هم بودند به خاطر میآورد اما این قرضها قرضهای شرافتمندانه بود و به اشخاصی بود که او دیگر به آنها رفت آمد نمی کرد و سابقا از آنها بدگویی هم میکرد کرد چیزی که او را در این لحظات تاریک آزار می‌داد، داد دو یه بود که به طور احمقانه حیف و میل شده بود اما او باز هم خیلی زود به یادآوری خاطره یه علتهای عالی می پرداخت. ناگهانی و بی هیچ دلیل شخصیت فراموش شده را که کاملا فراموش شده بود به یاد آورد. خاطره یه کارمند دولت یک پیرمرد خوب را که موهای سفید و کمی مسخر آمیز داشت و مدتها پیش ولچانی روزی در ملعه عام بدون علت و تنها به دلیل خودخواهیش به او توهین کرده بود. آن هم فقط برای اینکه شوخی شوخی ای که کاملاً به جا بود و برایش شعن و ای در برداشت کرده باشد و این شوخی بلا فاصله از طرف دیگران تکرار شد. به قسم این واقعه را فراموش کرده بود که حتی نمیتوانست اسم این پیرمرد را به خاطر آورد در صورتی که به یک لحظه توانست تمام آن صحنه را در ذهنش با وضوح و روشنی عجیبی مجسم کند به خوبی به یاد آورد که پیرمرد آن وقت از دخترش دفاع می‌کرد دخترش که مسم بود و هرگز عروس نشده بود و با خود او زندگی می‌کرد و به همین علت درباره او زمزمه در شهر شایع شده بود. پیرمرد سعی کرده بود جواب دهد و عصبانی شود، اما ناگهان در برابر همه ی مردم بغزش ترکیده بود و این اثر بی اندازه عجیبی بخشیده بود. برای سرگرمی او را با شامپانی مست کرده بودند و از این موضوع بسیار خندیده بودند و وقتی بی هیچ دلیل ولچانینوف پیر پیرمردک را به خاطر آورد که صورت را میان دستهایش پنهان کرده است و مانند تفلی حق حق می کند به نظرش آمد که هرگز این منظره را فراموش نکرده بوده است چیز عجیب این بود همه این وقایه در همان وقتها به نظرش بسیار مسخره می آمد. اما اکنون برعکس بود به خصوص در مورد بعضی جزئیات و به طور اخص درباره آن صورتی که در بین دستها مخفی شده بود بلا فاصله به خاطر آورد که چگونه فقط برای تفریح به زن زیبای معلم مدرسه تهمت زده بود و چگونه این تهمت به گوش شوهرش رسیده بود؟ کمی بعد ولچانینوف این شهر را ترک کرده بود و هرگز نفهمیده بود که این افترای او چه نتیجهی بخشیده است؟ اما اکنون تصور می کرد که این موضوع به کجاها می توانسته است انجامیده باشد و اگر ناگهان یک خاطره بسیار نزدیک دیگر به خاطرش نمی آمد، خدا می داند رشته تصوراتش به کجاها می کشید. خاطره یک دختر جوان، یک دخترک بورژوا، حتی این خاطره به نظرش خوشایند هم نبود و در حقیقت شرمنده هم می شود. دخترک معلوم نبود به چه جهت از او بچه دار شده بود و او وقتی که پترزبورگ را ترک گفت زن را با بچه رها کرد به این که از آنها خدا حافظی کند درست است که وقت این کار را نداشت خیلی بعد یک سال تمام بیهوده سعی کرد این دختر جوان را از نو پیدا کند ولچانینوف شاید صدها خاطر از این نو داشت که به نظر می آمد هر یک از آنها به دنبال خودشان ده خاطره دیگر را می آورند و همینطور کم کم حس خودخواهیش داشت آزرده میشد شد گفتیم که حس خودخواهیش به شکل مخصوصی کشته شده بود درست اینطور طور بود گاه گاهی خیلی به ندرت به درجه خودش را فراموش می کرد که حتی از اینکه کالسکی مجلل ندارد و پیاده از این دادگاه به آن دادگاه می رود و در وضع سر و لباسش دقت نمی کند دیگر خجالت نمیکشید و اگر یکی از آشنایان قدیمیاش او را در کوچه با نگاهی تحقیرامیز ورانداز می کرد یا وانمود می کرد که او را نمی شناسد، او راستی آنقدر مناعت نفس داشت که حتی چین بر جبی نیفکند. این کار نه تنها ظاهر فریبی نبود، بلکه آن را با کمال خلوص نیت انجام می داد. این موضوع به ندرت اتفاق می اینها لحظات کوتاه بی و حیجان او بودند. اما کم کم خودخواهیش از ععللی که سابقاً با آن همراه بود جدا میشد و روی تنها موضوعی که دائما فکرش را مشغول میکرد متمرکز میکردید. با تمسخر این گونه استدلال میکرد. اکنون تقریبا همیشه با تمسخور به خویشن میاندیشید. خب، پس موجودی است که مایل است خوی مرا تغییر دهد. و هم او این خاطرات لعنتی و این اشک پشیمانی را برایم میفرستد. باشد. اما این کار بیهوده است. همه اینها جز مشتی نیست که در تاریکی افکنده شود. من به خوبی میدانم که اکنون با وجود اینکه خودم خودم را محکوم میکنم و با وجود این اشک پشیمانی، با وجود چهل سال ابلهیم کمترین اختیاری از خود ندارم. اگر مثلا فردا همان وسوسه‌ها ها خود کنند نفعم در این است که جار بزنم و حیاهو برپا کنم که آن زن معلم مدرسه هدایایم را قبول می کند بی شک این را جار خواهم زد بی هیچ تردیدی و این کار باز بدترین و نفرتنگیزترین چیز هاست زیرا این کار برای بار دوم تکرار می شود. و اگر امروز این پرنس کوچولوی عزیز دردانه مثل یازده سال پیش که زانویش را با یک ضربه تپانچه در هم شکستم به من توهین میکرد، فوراً او را به جنگ تن به تن دعوت میکردم و باز یک پای چوبی دیگر به او هدیه میکردم. بنابراین آیا همه اینها جز مشتی نیست که در تاریکی افکند شود بی اینکه هیچ معنایی در بر داشته باشد من وقتی نمیتوانم خودم را شرافتمندانه از خودم هرقدر که کم باشد آزاد سازم برای چه همه اینها را به خاطر میآورم. و هرچند که تاریخچه زن معلم مدرسه تکرار نمیشد هرچند که یک پای چوبی به کسی هدیه نمیشد ولی تنها فکر و خیال بود که موقعیت آنها را ایجاد می کرد و دائما دوباره به خاطرش میآدند و گاهی از درش میآوردند. با وجود این نمیش. مدام به وسیله این خاطرات مورد شکنجه و آزار قرار گرفت. آدم حق دارد در فواصل آنها کمی استراحت کند، کمی گردش کند. و همین کار را نف می می‌کرد. حاضر بود در این فواصل گردش کند. اما زندگی در پترزبورگ بیش از پیش برایش دشوار می‌شد. ماه ژوئیه داشت فرا میرسید. گاهی حس می کرد که میل پیدا کرده است همه چیز را ترک گوید. حتی دعوایش را و فوراً بی این که به پشت سر خود نگاه کند مثلا بر حسب تصادف به کریمه برود. اما اغلب یک ساعت بعد این فکر را مسخره می کرد و به آن می خندی. اگر این افکار به من منهجوم آور شده اند و اگر من هرقدر کم هم که باشد شرافتمند هستم، فرار به هیچ ناحیه ای نمیتواند به این افکارم پایان ببخشد. پس دلیلی برای گریختن از آنها نمی توان یافت. وانگهی برای چه از آنها فرار کنم به فلسف بافی خود به طرز ناگواری ادامه میداد. بله، فرار کردن از اینها برای چه؟ اینجا پر از گرد و غبار خفقان آور است. در این خانه همه چیز نفرت آور است. در دادگاه ها جایی که بین وکیل ها آمد و رفت می کنم، جز حرکات بیهوده و دلواپسی های ناچیز چیز دیگری وجود ندارد. تمام اشخاصی که هنوز در شهر هستند، تمام این چهره که از صبح تا شب در برابر دیدگانم می گذرند، بی صداقت آمیزشان را، خودخواهیشان را بزدلی روح‌های کوچکشان را و بی‌حسی قلبشان را بیاندازه اندازه آشکار و بی‌پرای نمایان می‌سازند. راستی بهشت مالی خودیایی ها که آشکار فریاد میزند همین است. همه چیز درست و پاک و همه چیز آشکار است. هیچ کس واجب نمی‌بیند باطن خودش را پنهان کند. همانطور که زن‌های ما می‌کنند و در بعضی ها یا در پلاش ها و یا در خارج اتفاق می افتد. این سادگی و این صداقت در خور احترام زیادی است بنابر این هیچ جا نخواهم رفت از خستگی به جان خواهم آمد اما همین جا خواهم ماند